کتاب الامامت و سیاسه نوشته ابن قتیبه دینوری متوفای دویست و هفتاد و شش هجری قمری دویست و و شش هجری قمری قبل از تبری بوده خیلی کتاب قدیمیه خودشم از بزرگان اهل سنته جلد اول صفحه چارده میگه وقتی که صقیف تشکیل شد و به مسجد برگشتن علی در منزل بحث نشسته بود با طلحه و زبیر رو ادعی که نمی آمدن آمدند دم در اونها رو به مسجد آوردن با اون خزایایی که من کار ندارم فقط این تیکرا رو میخوام بگم میگه وقتی که علی رو آوردن تو مسجد ابوبکر بالای منبر بود عمر شمشیر گرفت بالا سر علی دارم تاریخ میخونم ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 14 متوفای 276 هجری قمری بهش گفت بیعت میکنه یا نه قال علی یون و الا مفعل فم این عبارت ابن قطعبست اگر بیعت نکنم چه میکنی؟ قال عمر ولذی نفسی به یده نظروب با اونغک به خدایی که جانم به دست اوست گردنت رو میزنم قال علیون اتقتل الله و اخا رسوله دارم عرض میکنم عبارت ابن قطعبست دارم متن و حفظم دارم میکنم اتقتل الله و اخا رسوله آیا میخواهی عبد خدا و برادر رسول خدا را بکشی؟ قال عمر اما عبدالله فنعم اما اخ رسولهی فلا اما تو را عبدالله قبول داریم برادر رسول خدا قبول نداریم مگه تو این مسجد پیغمبر مگفته بود یا علی انت اخی تو برادر منی اینه الان مخواهی اینها ما کنار بزنیم در اینجا میگه و عبوبکر ساکتون لا یتکلم عبوبکر ساکت بود حرف نمیزد عمر عصبانی شد به ابوبکر گفت ما رأیو که نظر تو چیه انهاز المتخلف ان بیعتک نسبت به اینی که از بیعت تو داره تخلف میبرزه ابو بک گفت راهاش کنید فعلا چرا؟ ابن قطعبه نمیگه اما تو کتاب شیعه داره چرا؟ میدونه چرا؟ تو کتاب های شیعه چی نوشته چرا راهاش کرده؟ حضرت زهرا سلام علیه ها اومدن فرمودن که علی را آزاد می‌کنید یا من نفرین کنم که سلمان میگه وقتی فاطمه سلام علیه وارد شد دید شمشیر بالا سر علی گرفتن فرمود به خدا قسم از ناغه سالح کمتر نیستم ناغه سالح رو وقتی اونجوری آزردن بلا نازل شد نفرین میکنم سلمان میگه من کنار علی ایستاده بودم علی در زیر شمشیر سرشو بالا کرد فرمود سلمان به فاطمه بگو نفرین نکن سلمان میگه در این بین خدا را شاهد میگیرم که دیدم مسجد میلرزه من دوان دوان اومدم به فاطمه گفتم که علی میفرماید نفرین نکن فاطمه گفت علی میگه چش ساکت شد برگشت منزل که دیگه تو بستر افتاد اون قضاایا که نمیخوام وارد اون مغوله بشن ولی ابن قتیبه اینا رو دیگه نمیگه فقط میگه که ابو مکر گفت رهاش کنید آزاد کردن و این جمله رو داره دقت بکنید و له علی الی قبر نبی قبر پیغمبر تو مسجد خانش دیگه بس بود علی به طرف قبر پیغمبر آمد و هوایسیح سای همی زد و یونادی ندا در می‌داد یبن ام ان از افونی و کادو یختلوننی یعنی چیو می‌خواست بگه تو گفتی انتمنی منی به منزله هارون ام موسی اله لا نبی بعدی همونطوری که در غیاب هارون در غیاب موسی هارون رو تهدید به قتل کردن و سامری آمد مردم رو فریب سربردار سامری های این امت رو ببین